تا بیا که یار زرخ پرده برگیرد کار چراغ خلوتیان باز درگیرد آن شمع سر گرفته دیگر چهره بر فروغ وین پیر سال خورده جوانی ز آن اشو داد عیش اش که مفتیز ز ره برَد وان لطف کرد دوست که دشمن هذر گرف زنهار از آن عبارت شیرین دلفریب گویی که پسته تو سخن در شکر گرف بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود ای سادمی خدا بفرستاد و برگرف هر سرف غد که برمه و خور حسن می چون تو در آمدی پی کاری دگر گرفت زین قصه هفت گنبد افلاک پر سداست کوتح نظر ببین که سخن مختصر گرفت حافظ تو این سخن زکا موختی که بخت tawiz kerd cheur tora vo